مدام مست می دارد نسیم جدگی سویت خرابم می کند هردم فریب چشم جادویت پس از چندین شکیبایی شبیه آرب توان دیدن که شم ادید افروزیم در مهراب عبرویت سواد لوه بینش را عزیز از بحر آن دارم که جان را نسخی باشد زلوه خال هندویت تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی سبارا گو که بردارد زمانی برغه از رویت وگر رسم فنا خواهی که از آلم برندازی برفشان تا فروری زد هزاران جان زهر مویت من و باد سبا مسکند دو سرگردان بی حاصل من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت زهی هممت که حافظ راست از دنیا و از اقبا نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سرکویت.